بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز و گرانقدر موحدین محترم، علاقمندان برنامه عقیده در قرآن و سنت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، در برنامه 16 یا 16 برنامه از عقیده در قرآن و سنت قرار داریم. در این برنامه دوستان عزیز خدمتتان موضوعی را تحت عنوان فهم و واجبات کلمه طیبه دوستان عزیز منظور از درس امروزی است که ما چطور میتنیم که امی کلمه طیبه را درست بفامیم و بعد از اینکه خوب فامیدیم بالای ما چی واجباتی داره که یک مسلمان باید به این کلمه عمل بکنه اولی است که مهم سر مفهوم یا فهمیدن خود ای کلمه و ایره اگر شما فکرتان باشه در برنامه های قبلی گفتیم که خود کلمه طیبه لا اله الا الله که از چهار کلمه تشکیل شده و قدرت الله جل جلوه است که اگر انسان همیشه لا اله الا الله میگه حتی در مجلس و در را و در سرک برای زیر یا هم پیدا نمیشه خاطر ازی که امی کسی که میگه لا اله الا الله در این لبهای شور نمیخورن در دیگه حالات لبها شور میخوره و احیانا انسان با ریاموب طالع میشه اما دی ای وقتی که اگر انسان هزار مرتبه بگه لا اله الا الله لا اله الا الله در یک مجلسم هم شیشتا هیچ تصور نمیکنه که این زبان شور میخوره یا نمیخوره لب شور میخوره یا نمیخوره به هر صورت چقدر خوب است که انسان همیشه بگه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خب علما میخوایم که در مفهوم لا اله الا الله درست یک ماکس بکنیم شما میگین که لا اله الا الله ما هم میگم که لا اله الا الله ای که قبل از آمدن رسول الله صلی اللہ علیه و سلم مردم اونجا یعنی قریشی ها و دیگر عرب ها با وجود الله و به این که الله جل جلو خالق اسمان و سمین است به اینا ای عقیده داشتن باور داشتن ولی چرا با لا اله الا الله اختلاف میکردن یک نقطی بسیار دقیق است که او باید بفهمیم و به ایسا ما میفهمیم لا اله الا الله چی معنا میتن ببینین دو جمله برتان میگم شما این دو جمله استنباد کنین که ای دو جمله با هم در دا فارسی دری چی فرق داره و بازمی جمله را اگر ما تانستیم که در فارسی یا در دا زبان دری یا به زبان پشتو مانایش درست بفامیم باز ما میتونیم که مانای کلمه را بفامیم. جمله اولیه است که ما در زبان دری میگیم که دمی استادیوی که مال فعلا هستم ما میگم که بر من یک تلفون میاد تلفون میگم که در استدیو هیچ کس نیست به غیر از سید مجیب بودین جواد هیچ کسی نیست به غیر از سید مجیب بودین جواد و در جمله دومی میگم که سید مجیب بودین جواد در استدیو هست حالا شما ببینید که دو جمله شد یک نفر ما دو قسم گفتیم جاوید در استادیو هست هیچ کسی غیر از جاوید در استادیو نیست پس اینال ازی دو جمله ازی دو جمله ما چی استفاده میکنیم و فرق قضیر چه قسم میفهم اگر کس فرق قضیر فهمید؟ باز کلمه تیبر فرق شب بسیار خوب میفهمه. در یک جمله که گفتیم که جاوید در استادیو هست مانای زیگف مایی هست که در استدیو جاوید است احمد است خالد است محمود است فاطمه کریمه شد کسای دیگه هم در استادیو وجود داشته باشن و با امرای من همکار کار اما اگر من میگم که هیچ کسی به غیر از جاوید در استادیو نیست پس اینجا معلوم میشه که در این استدیو امرای من هم کار فقط جاوید است و کس دیگه دیگه تمام کارمندها رفتن و هیچ کس دیگه اینجا در استادیو نیست پس در جمله اولی که گفتیم که سید موجیبودین جواد در استادیو است یا جاوید در استادیو هست؟ دای معلوم میشه که امرایزی جاوید یا سید موجیبودین کسای دیگه هم هستن. متوجه هستین؟ کسای دیگه هم هستن. اما گفتیم که هیچ کسی به غیر از جاوید در استادیو نیست، مانای است که در استادیو فعلا به غیر از جاوید کس دیگه هیچ کسی نیست. پس فارقش شد. اگر مثلا ما میگیم ما انس دوست دارم. معنای از میشه که من انس دوست دارم. بساره مگه؟ سمیره هم دوز دارم، اسماگک هم دوز دارم، بیبی هم دوست دارم، بیبی نسیبر هم دوز دارم. برادر هم دوز دارم، پدر هم دوز دارم، کاکایم هم دوست دارم، مامای هم دوز دارم. اما اگر من بگم براتون که من هیچ کسی را به غیر از انس دوست ندارم معنای گپم ای است که فقط من انس دوست دارم دیگه هیچ, کس هیچ کسی را دوست ندارم من میگم من هیچ کسی را به غیر از پدرم دوست ندارم معنایش این میشه که من فقط پدرم را دوست دارم و دیگه هیچ کسی دیگر را دوست ندارم من هیچ کسی را به غیر از مادرم دوست ندارم معنایش میشه که من به غیر از مادرم دیگه هیچ کس خوشم نمیه. انال پس اگر میگم که من مادرم و دوست دارم و من میگم که هیچ کسی را از مادرم دوست ندارم دبای دو نزی هر بسیار فرق است و انسان های وشیار و کی را خوب درک میکنم و مسلمان وشیار میماشه که یه سنفاتن بسیار وشیار زیرک و دقیق است آلم این پرسان میکنیم که خب وقتی ما گفتیم که این رفاهمید مانایشه این سر عزید اگر یک کسی که مشرکین میگفتن که الله وجود دارد الله را عبادت میکنیم الله را اطاعت میکنیم به الله رکوع میکنیم به الله سجده میکنیم ایگه تو مشرکین میگفتن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد تا چل سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت الله را عبادت میکنیم آسمانها ها و زمین الله خلق کرده جل جلوهو ای همه میگفه میداد لیکن بعد از یک پیغم بست هم چل ساله شد و بالایش وحی نازل شد باز رسوله هستم برشان گفت که هیچ کسی را غیر از الله جل جلوهو عبادت نمیکنیم وقتی گفت هیچ کسی را غیر از الله جل جلوهو عبادت نمیکنیم مانایش چی شد؟ مانایش ای شد که اینجا جنگ بین مشرکین و بین رسول الله صلی علیه و کسانی که از رسول الله صلی اللہ پیروی می یک جنگ در گرفت گفتیم که تا سالگی نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم محمد صلی الله علیه و سلم و هم مشرکینی که موجه وجود داشتن همه ایشان که الله خالق ماست الله رازق ماست الله جل جلاله را عبادت می کنیم الله جل جله وجود داره به وجود الله جل جله کلشان ایمان داشتن لكن وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم چل ساله شد و وحی بالاش آمد در اینجا نبی کریم صلی الله علیه و خیست و بر مردم جمله دیگی گفت که با جمله اولی فرق کرد در جمله اولی سابق قبل از 40 سالگی میگفتن که الله را عبادت میکنیم الله را دوست داریم، الله وجود داره، الله خالق ما هست. در اینجا مشکلی نداریم، اگر ابرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هیچ مشکلی نداشتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چل سالگی شد و اینجا شروع کرد، این کلمه را بر مردم یاد میداد که هیچ کسی را با غیر از الله جل جالو عبادت مشکل پیدا شد. چه قسم مشکل پیدا شد؟ مشکلی پیدا شد که اونها گفتن که هیچ کسی را غیر از الله جل جلوه اعبادت نمیکنیم. در اینجا مشرکین خیستن و در مقابل حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم استادگی کردن. اینالا کسانی که جمله اولی رفا بودند، بودن جمله اولی رفا میده بودن و جمله دومی رفا میده بودن آل مانا دو جمله را میفهمند. مشرکین میگفتن که الله خالق اسمان ها و زمین است ما الله جل جلاله را عبادت میکنیم ده پالی از امم مشرکین میگفتن که ما الله را عبادت میکنیم پس ما برای هبل هم عبادت میکنیم برای لات هم عبادت میکنیم به مناط هم عبادت میکنیم با دیگه مخلوقات هم عبادت میکنیم پس اینجا مشرکین چیک میکردن اردو عبادت هم برای الله جل جلو هم با غیر الله وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلام اومد و ای برشان گفت که لا اله الا الله نیست هیچ معبوده هیچ کسی مستحق عبادت نیست الا الله غیر از الله جل جلوه در اینجا شد که مشکل مشرکین فاهمی که سیصد ش شهست که ما در اطراف کعبه ماندیم ما پناه به جنها میبریم لا اله الا الله مانع از ایک کار ما میشه بغیر از الله به کسی که پناه نبر ما عبادت غیر الله میکنیم میریم پیش دوست خداس حبل برزو نظر میکنیم زیر پاش حیوان زرحه میکنیم این هم از بین میبرم ما میریم پیش جنها بر جنها مشکل خدا بیان میکنیم و او مشکل کشای خود قرار میتیم او هم منم میکنم ایا کن آه ایا کناعبدو؟ یعنی الله یا الله خاص تر عبادت میکنی؟ کلمی خاص خوش نداشت. و توحید و وحدانیت الله جل جلو در اینمی خصوصیت است. که خاص عبادت بر الله شود خاص نظر نام الله گرفته شود خاص قربانی نام الله شما، خاص حیوان نام الله جل جلوه رو به طرف قبله نمیتر زیر قبر نه به پای حاجی نه به پای عروس نه به پای لات نه به پای منات حیوان زفنه شد اینا اینمی مسئله رو قبول نداشتن اینا وقتی که شنیدن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برشان گفت که لا اله الا الله قولو بگوین مردم لا اله نیست هیچ معبوده هیچ مخلوق مستحق عبادت نیست ای جنه که شما میریم این که پناه جنه ها میبرین این که پیش بط میرین این که پیش قبر میرین این که نام مخلوق در مقابل مخلوق رو میکنین و سجده میکنین یاره همشان رسول الله صلی الله علیه وسلم نفیه کرد وقتی که نفیه کرد تا سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم صادق بود و هم امین بود و هم طیب بود و هم طاهر بود و هم در دا دارم ندوه برش اجازه میدادن بشینند بشینن. چرا؟ بخاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چل سالگی مثل گفت از اونا که اونا عقیده داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالف عقیده از اونا گفت نمیزد، زد. بطایشانا چیز نمی گف. لكن وقتك که نبی کریم صلی عليه وسلم بالاش علایش وحی آمد و انظر و بترسان یا المدثر قم بخی انظر بترسان مردم ازی بد پرستی ازي مخلوق پرستي ازي قبر پرستي ازي شخص پرستي ازي پیغمبر پرستي ازي ملائكه پرستي ازي چوب و سنگ و عفتاب و محتب مجرده که بیغم مرسم، لا اله ها گفت نیست هیچ کسی مستحقی الله ایلالله غیر از الله جل جل مشرکین خیستند در مقابلش که خو مالات از بین ببریم منات از بین ببریم مای بطهار از بین ببریم مای کسایی را که برشان این مجسمه ابراهیم علیه سلام در دا داخل کعبه ای از بین ببریم مجسمه اسمایل علیه سلام در دا داخل کعبه از بین ببریم ای بطهای ها را که ما جور کردیم ای مجسمهای از ای شخصیت ها را از بین ببریم اینا کلشان چه می گفتن که واله ای سهسدو تمام از اینا نه به ملایکه سجره نه به مخلوق نه به هیچ نه به فقط به یک پروردگار یگانه فقط به الله اینجا شد که مشرکین ای به پیغمبر قبول نکردن و بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سطحا نامه گذاشتن. او پیغمبر که صادق بود تغییرش دادن به کاذب حتی کاذب چی گفتن کذاب او پیغمبر که او رو در داراندوه اجازه میدادن که باشه بشینه آل اجازهش نمیتن که حتی در خانه خود باشه بالاخره مجبور به هجرت ساختن آل فهمیدیم که کلمه طیبه دارای چی مفهوم است و وقتی که مفهوم کلمه طیبه را فامیدیم آره سر نقطه دیگه بحث بحث کنیم که وقتی این کلمه را فامیدیم چی واجبات بالای ما داره کلمه لا اله الله؟ طبعا اولین واجبه که کلمه طیبه بالای ما داره و اون باید ما بفامیم فهمیدن خود محتوا و مفهوم کلمه لا اله الله است طبعا كلمة طيبة باي با ايات الشريفه كي و من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بسيار ارتباطي قوي دارن و من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه في القران الله جل جل ميگه كي و من يكفر بالطاغوت هر كسي كه شد بالله اول باید به با کی کافر شو، به طاغوت طاغوت کی است طاغوت هر چیزی که با غیر از الله جل جله ادعا میکنه که ما میسازم و ما باید عبادتش کنم فرعون یک طاغوت بود میگفت انا ربکم الاعلا ما هستم بیاین پیش من فرعون یک طاغوت بود و وقتی که یک انسان مسلمان باید اول مفهوم کلمه لا اله الا الله به شکل درستش درک کنه و بفهمه و این ما سرش زیاد بحث کردیم نقطه دومی که از واجبات است که باید ما در مقابل کلمه داشته باشیم یقین داشتن به این کلمه هست یعنی یقین داشته باشیم که این کلمه هر نوه شک از بین میبرن و کسانی که در پالو ازی که کلمه میخوانند لکن شک دارن اینا مسلمان های واقعی نیستن. پس مسلمان و مؤمن و واقعی کی هست که وقتی این کلمه را میخوانه مفهومش را درست فامید و با او کاملا یقین داشته باشه که این کلمه ای کلمه هست که انسان از عبادت مخلوق دور میکنه سومین واجب کلمه طیبه چی است اخلاصی که منافی شرک است و وقتی که انسان ای کلمه را خوان، او تو اخلاص میداشته باشه که او از, از, از هر چیزی که مخالف ای کلمه هست یعنی کاملا شرک از بین می بره و ای کلمه انسان به یک انسان موحد مبدل میکنه البته کسی که هم لفظشه و هم مانایشه بفرما چرا که وقتی که انسان کلیمه را خوان، به زبان خواند و به قلب او را تصدیق کرد طبعا مانایش رو می فهمه بازه قلب تحضیق میکنه اما اگر مثلا لفظ تنا بخوانه و مانایش رو درست نفهمه شاید اگر یک بیدین یک کافر هم بگویی یک روز ما دیدم چند نفر جوانایی یک دوره استاد کردن که کلمه رو می او و چرا می, می فهمیم دیوانه نیستم گفتن بخوان خوان گفت لا اله الا الله محمد رسول الله این نفر خان، لکن اگر امی نفر صد دفعا کلمه را بخانه لیکن بازم پیش بود برستش را بکنه پس آیه مومن گفته میشه ای باز مومن گفته نمیشه پس خود کلمه باید برای انسان اخلاص ایجاد بکنه که قلب خوده خالصا لله به الله جل جل تسلیم بکنه اگر یک نفر کلمه را میخانه لاکن قلبا مخلصانه به الله عمل نمیکنه در قلبش ام محبت الله هست ام غیر الله هست و در عملش هم امی قسم است. یک روز نماز خدا به الله میخوانه باز سه دعا را به مخلوق بلند میکنه. سجده به مخلوق میکنه. نظر به نام مخلوق میکنه. باز او امی اخلاصی که ای کلمه داره او اخلاص ای پیدا نکرده. چارمین چیزی که در کلمه مهم است صداقت در اعتقاد است. وقتی که اعتقاد میکنه باید به با او صادق و راستگو باشن یعنی امی قسم چیزی را که در زبان خود میگه در قلب خود هم با او یقین داشته باشه یک نفر شاید کلمه را بخونه برای مردم بگه که والا من مسلمان هستم لكن وقتی که از پیشش در غیاب باشه باز ای بخالف از این کلمه برخورد بکنه از یعنی. این خاطر و ناسی الناس ایت میگه و ناسی. بعضی از مردم ها من کسانی هستند که یقول میگه امن بالله و بالیوم الاخر اذا زبان میگه ما ایمان آوردیم به الله <سؤال> و به روز قیامت و ما هم مؤمنین یا مؤمنین سان چرا یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدون الا انفسهم و ما یشعرون انا میگه ما فریب میتیم الله علی ایاذ بالله فریب لكن الله و اگر شعور یک حیوان هم انسان داشته باشه یک حیوان هم شما سعی کنید، یک پشک وقتی که جنایت میکن، اگر گوشت تا پیش پشک بانی خودد بش بی اماطور دن بگزدندم پول چی و گشت رو میخورن. اما اگر گوشت دوزی دزی کرد این پشک میفهمه که ما جنایت کردیم همین گوشت که دوزی کرد و دو پلیس سای خود نمیشنن بگرست که نمی روززی از این خاطر اون پشکهایی که بر دوزیم جنات کار هستند، مجاهد که مالک خانه را دید میگروزه و او پشکه که کار نیستم و خودش تنان خوشگام برش میبردند قرار آرام است چرا مو او جنایتکار کار میگروزه به خاطر از اینکه شعور داره همین شعورش برش میفهمانه که تو جناعت میکنی پس یک انسانی که در زبان خود یک چیز میگه و مؤمنه رو و میگه ما پروردگار خدا فریم میدم در قرآن شریف میگه ای امی آنقدر بی شده که تمام شعور مو یخه عقل داره انسان از باید عقل ازی باید برش بسیار خدمت میکرد و ایره برای حق میرسن لکن ای اخلا چی میگه که تمام شعور عادی حیوانی رو هم نداره که همه قفه کنه بکنه که ما اگر مسلمان را فریب بتم چی میتانا کرده یک کس ما را فریب بده اعتراض فریب بده و جماعه مسلمان هستیم. خود ما داروز خدمت در دا جان خود هستیم اگه او عقل می داشت او باید فکر می کرد که من چطور خودم می دانم در زندگی دنیا و در آخرت چطور خودم نجات بدم پنجمین چیزی که برای یک انسان مسلمان مهم است که اوی کلمه او را شامل میشه و واقعا واجب از این کلمه حق از این کلمه را ادا کرده اویی است که انسان وقتی که به این کلمه ایمان داشت دیگه قلبا رضایت داشته باشه و قلبا با به احکام الله جل جلوه تسلیم باشه رضایت چی مانه؟ آیت شریف است در یعات شریف میگه فلا و لا یؤمنون قسم از به پروردگار که ایمان ندارن حتی یحکیمو که فی ما شجر بینهم ثم لا يجد في صدور حرج مما قضيت ويسلم تسليما دريات شریف میگه که الله جل جلاله قسم یاد میکنه و بسیار دقیق است در مساله عقیده بسیار کس بسیار در قسمت آیات شریف بتفاوت هستند الله قسم یاد میکنه فلا و ربك قسم است و پروردگار اطی محمد صلی الله علیه و سلام. لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم انا ایمان ندارن تا ای که تو حکم قرار نتن فیما شجر هم در آن چیزی در بینشان اختلاف پیدا شده خب ای که همی آیه شریف چی معنا داره و مفهومش چی هست و چقدر ما سر باید جدی باشیم ایرا را ان الله تعالی در برنامه بعدی خدمتتان تقدیم خاط کردیم تا او وقت شما را به الله جل جلاله مسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات